بسم الله الرحمن الرحیم بنامه نام خداوند اندازه مهربان نهایت بار تا طس میم این آیات کتابی روشن است بر تو قسمتی از داستان موسی و فرعون را برای مردمی که ایمان دارند به درستی می‌خوانیم بگمان فرعون در زمین سرکشی کرد و مردم آن را به دسته های متفرق ساخت یک دسته ایشان را زبون گردانید پسران ایشان را می کشت و دختران ایشان را زنده نگه می داشت حقا که وی از مفسدان بود و ما می خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین زبون گردانیده شده بودن منت گذاریم ایشان را پیشوا گردانیم و ایشان را وارث آن سرزمین سازیم ایشان را در زمین جاگوزین گردانیم و تو برای فرعون هامان و علشکریانشان از طرف بنی اسرائیل چیزهایی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند به مادر موسا الهام کردیم که او را شیر بده پس چون در مورد او برای خوف دست داد او را به دریا بینداز مترس و غمگین به گمان او را به تو باز می آوریم و او را از پیامبران می گردانیم پس کسان فرعون او را از دریا برداشتند آره این سرنوشت شده بود تا موسا برای فرعونیان دشمن و سبب اندوه باشد بیگمان فرعون و هامان و همه لشکریانشان خطاکار بودند زن فرعون گفت این طفل برای من و تو نوری دیده است او را مکشید شاید به ما سودی برساند یا ما او را فرزند بگیریم و ایشان احساس نمی کردن که به چی سر نوشته که خواهند شد دل مادر موسی بیتاب شد و نزدیک بود آن رویداد را افشا کند. اگر آن نمی بود که ما دل او را نیرومند و شکیبا گردانیدیم تا از باورمندان و عادی ما باشد بخاهر موسی گفت برادرت را تعقیب کن پس او از دور موسا را دیدبانی می کرد ولی فرعونیان احساس نمی کردند موسا را از پیش از گرفتن پستان شیرآوران آوران باز داشتید. پس خواهرش گفت آیا شما را به خانواده راه نمایم که او را برای شما تربیت کنند و با او خیرخواه باشند؟ به با این ترتیب او را به با مادرش بازگشتاندیم تا چشم او روشند شود و اندوهی نشود و تا بداند که وعده خداوند راست است اما اکثر مردم نمی داند. و چون موسی به کمال نیرومندی خود رسید و بر امور خیش مسلط شد به او حکمت و علم دادیم و نیکوکاران را این چنین پاداش دیم و به شهر داخل شد که مردم آن متوجه نبودند. در آنجا به دو مرد برخورد که با هم شدیدن پرخاش می کردند. یکی از قوم خود او بود و دیگرش از قوم دشمنان او آنکه از قوم خود او بود از وی در برابر دشمن خود دادخواهی کرد در این حالت موسی آن دشمن را مشتی زد که کارش را تمام کرد موسی گفت این از عمل شیطان است بیگمان که او به گونه آشکارا دشمنی دشمن گمراهگری است موسی گفت ای پروردگار من واقعا بر نفس خود ستم کردم مرا بیامرز خداوند او را آمرزید حقا که او آمرزنده و مهربان است گفت ای پروردگار من چون بر من نعمت فراوان دادی از این رو هرگز مددگار مجرمان نمی‌شوم بامدادان با ترس در شهر دیدبانی می کرد که ناگهان با مردی برخورد که دیروز از او کمک خواسته بود باز فریاد دادخواهی زد موسا با او گفت براستی که به گونه اشکار تو گمراه هستی سپس هنگامی که موسی خواست تا مرد را که دشمنشان بود گرفتار کند آن شخص با گونه دادخواهی گفت ای موسا آیا می خواهی که مرا بکشی طوری که شخصی را دیروز کشتی؟ جست تمگری در زمین اراده نداری و نمی خواهی که از جمله مسلحان باشی مرد از دورترین قسمت شهر شتابان آمده گفت ای موسا بزرگان دربار فرعون با هم در مورد تو مشورت دارند تا تو را بکشن پس بیرون را و من به تو از نکخاهانم موسا از شهر با ترس و دیدبانی بیرون رفت در این حال گفت هی پروردگار من مرا از قوم ستمگار نجاد چون به سوی مدین روی آورد گفت امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند چون به آب مدین رسید در آنجا دسته از مردم را دید که شان را آب می دهند و به عقیب آنها دو زن را دید که رمایشان را پاسداری می کنند گفت مشکل شما چیست؟ گفتند رمای خود را تا وقت آب نمی نوشانیم که دیگر شبانان رمایشان را بازگردانند و پدر ما سال است او رمایشان را برایشان آب داد سپس به سایه روی آورد و گفت ای پروردگار من به چیزی از خیر که به من فروداری نیاز دارم یکی از آن دو دوشیزه با نهایت حیاب سوی او بازگشت و گفت پدرم تو را می خواهد تا در برابر آبدادن رمه ما به تو مزد بدهد چون موسی به پیش پدر آن دوشیزگان آمد و کسای خود را به او بیان کرد آن شخص گفت ما اوکنون از قوم ستمگار نجات یافتی. یکی از دو شیزگان گفت ای پدر من او را استخدام کن براستی بهترین کسی را که استخدام کنی آن است که قوی و کار باشد گفت می خواهم یکی از این دو دختر خود را به تو به نکاه بدهم به شرط آنکه هشت سال خدمت مرا کنی اما اگر ده سال را به سر رسانی این مهربانی است از جانب تو و من نمی خواهم بر تو سخت گیرم شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت گفت این است قول و قرار میان من و تو هر کدام از این دو مدت را تکمیل کنم ملامتی بر من نیست و بر آنچه میگویم خدا گواه است چون موسی میاد را تکمیل کرد و خانواده خود را برد آتش را در سمت کوهی تول دید و خانواده خود گفت درنگ کنید بگو من من آتشی دیدم شاید از آن با شما خبری بیاورم یا پاره از آن آتش بیاورم تا خود را گرم کنید چون به آن آتش رسید از کرانه دست راست وادی از درختی در سرزمین با آوازی بلند شد که ای موسا حقا که من خداوند پروردگار عالمیان هستم و عصای خود را بیفکند چون آن را دید که حرکت می کند گوی است روی گردانید و با عقب باز ندید گفتیم ای موسا ما روی بیاور بیگمان تو از ایمنانی. دست خود را در جیب خود درار تا سفید یعنی درخشان بیرون آید بدون آنکه این سفیحی از عیبی باشد و بازوی خود را به پهلوی خود بچسپان که از ترس ایمن شوی این دو معجزه است از طرف پروردگار تو برای فرعون و بزرگانی درباری او بیگمان ایشان قومی فاسق بودند موسی گفت ای پروردگارم بیگمان من کسی را از ایشان ام از این رو می ترسم که ایشان مرا خواهم کشت و برادر من هارون، او در زبان از من فسیحتر است پس او را با من به حیث مددگاری بفرست تا مرا تصدیق نمایند که می ترسم آنها مرا تکذیب کنند خداون گفت ما یقینا با زوی تراب و وسیله برادرت محکم می سازیم و برای هر دوی شما سلطه می دهیم که دشمنان با شما دست نمی و با وسیله این معجزه های ما شما و پیروان شما غالبید چون موسی معجزه های روشن ما را به ایشان آورد گفتند این جز جادوی افترا شده ای نیست و ما چنین چیزهایی از نسلهای پیشین خود نشینده ایم موسا گفت پروردگارم به حال کسی که هدایتی را از جانب خدا آورده و نیز به حال کسی که سرای آخرت از آن اوست داناتر می باشد حقیقت این است که ستمگاران هرگز رستگار نمی شوند فرعون گفت ای بزرگان دربار برای شما جز خود خدای دیگری سراغ ندارم و تو ای هامان برایم بر کوره خشتپزی آتش بیافروز و برایم قصری بساز تا باشد که به خدای موسا سری بکشم و من او را واقعا از دروغگویان می پتارم. و به این ترتیب فرعون و لشکریانش در زمین بناحق تکبر ورزیدند و پنداشتند که ایشان به سوی ما بازگشتند نمی که در این حال او و لشکریانش را گرفتار ساختیم و آنها را به دریا انداختیم نگاه کن که عاقبت ستمگاران چی گوله شد. و ایشان را پیشوایانی گردانیدیم که مردم را به آتش می و در روز تیامت ایشان مدد کردن نمی در این دنیا از پایشان لعنت فرستادیم و در روز آخرت ایشان از زشت رویانند. بعد از اینکه ناصله های نخستین را هلاک گردانیدیم به موسی کتاب را با حیث پسیرت هدایت و رحمتی برای مردم دادیم تا باشد که ایشان گیرند تو به جانب غربی نبودی هنگامی که به سوی موسی امر پیامبری را رسانیدی و نه هم از گواهان آن رویداد بودی مگر ما از آن به بعد های را آفریدیم بر ایشان دوره های پیابی پی بذاشتیم در میان اهل مدین هم نبودی که آیات ما را بر ایشان میخاندیم مگر ما فرستنده پیامبرانی بودیم و نیز به گوشه کوه تور نبودی هنگامی که ما ندادر دادیم مگر این وحی رحمتی است در جانب پروردگار تو تا همان قومی را بیم بدهی که بر ایشان بیم دهنده پیش از تو نیامده بود تا باشد که ایشان پنگیرند. اگر این نمی بود که چون به ایشان نظر به اعمالی که دست هایشان از پیش فرستاده مجازات داده می شد می گفتند پروردگار ما چرا به سوی ما پیام برای نفرستادی تا آیات تو را پیروی می کردیم و از مؤمنان می بودیم چون سخن حق از جانب ما برایشان رسید گفتند چرا به او آیات داده نشد همانند آنچه به موسا داده شد آیا به آنچه پیش از این به موسی داده شد کافر نشدن گفتند دو سحر است پشتیبان یک دیگر. و گفتن بگمان ما هر کدام آن را, را... رد می کنیم بگو پس کتابی از نزد خداوند بیاورید که آن رحماتر از این دو باشد تا آن را پیروی کنم اگر شما صادق هستید اگر ایشان درخواست تو را اجابت نمی کنند پس بدان که ایشان هوای نفس خیش را پیروی می کنند و کیست گمراه تر از کسی که هوای نفس خود را بدونی در نظر گرفتن راهنمایی خدا پیروی کند حقا که خداوند مردم ستمگار را هدایت نمی کند و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. و کلام خیش را برایشان پی در پی فرستادیم تا باشد که پند بگید بانانی که برایشان کتاب را پیش از این دادیم ایشان به آن ایمان دارند. و وقتی که قرآن به ایشان خانده می شود می به آن ایمان داریم و واکن این حق است از جانب پروردگار ما یقینا ما پیش از این نیز مسلمان بودیم ایشان پاداش خود را دو بار در خواهند یافت به سبب آنکه شکیبایی ورزیدند با نیکویی بدی را دفع می کنند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن خود را به کنار می کشند و می گویند برای ماست اعمال ما و برای شماست اعمال شما سلام بر شما ما آرزوی پیوستن با صحبت جاهلان را نداریم واقعا تو نمی توانی هر کسی را که دوست داری رهیاب گردانی ولیکن خداوند هر کسی را که بخواهد رهیاب می سازد و او به حال راه یافتگان داناتر است و گفتند اگر با تو هدایت را پیروی کنیم از این سرزمین خود ربوده می شوید آیا ایشان را در حرم معمون جایگزین نگردانیدیم که با آن هر حاصل و هر میوهی آورده می شود روزی از جانب ما اما اکثر ایشان نمیتانه. ای بسا سرزمین ها را که چون در امور معیشت خیش زیاد کردند حلاک کردانی این است منازلشان که بعد از ایشان هرگز کسی با آن نشیمن نگرفت جز محدود از مردم یا جز در اندکی از زمان و ما هستیم که وارس آن سرزمین های و پروردگار تو و ایران کننده هیچ سرزمینی نبوده است تا در مرکز آن پیامبر را نفرستاده که آیات ما را بر ایشان بخاند و ما هرگز سرزمین ها را و ایران نمی کنیم مگر در حالی که اهل آنها ستمگار باشد چیزی که با شما داده شده همانا بر خورداری از وسایل محدود زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه در نزد خداست بهتر و پایندتر است آیا نمی فهمی؟ آیا کسی که با او وعده نی که وعده کردیم و او از آن به اندوز شد مانند کسی است که او را از متای زندگی دنیا بهرمند ساختیم. و سپس او در روز قیامت از احضار شدگان است و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجاست شریکان من آنانی که شما می پنداشتید در این حال آنهایی که جرمشان به حیث گمراهگر به اثبات می رسد می گویند ای پروردگار ما اینهای که ما ایشان را گمراه کردیم ایشان را گمراه کردیم طور که خود ما گمراه شدیم اکنون با حضور تو از کرده خیش بیزاری می جوییم ایشان ما را پرستش نمی کردن. با این مشرکان گفته می شود شریکان خود را بخوانید تا شما را از عذاب نجات دهند ایشان را می ولی آن شریکان با ایشان جواب نمی دهند مشرکان عذاب را می بینند و آرزو می کنند ای کاش ایشان را حیاب می شودند. و روزی را با یاد آرید که خداوند بر ایشان صدا کرده می گوید را چی جواب داده بودید؟ در این حال همه موضوعات نزدشان مبهم میماند و گفت و شنید نمی کند اما کسی که توبه کرد ایمان آورد و نیکوکاری ورزید پس امید است که از زمره رستگاران باشد و پروردگار تو هرچه را بخواهد می و هرکی را خواهد برمیگزیند حق انتخاب در زمینه با ایشان سپردن نشده است منظه است خدا و برتر است از آنچه با او شریک می آورد. و پروردگار تو چیزهایی را که سینه ایشان پوشیده نگه می دارد و آنچه را آشکار می سازند همه را می دارد و اوست خدا معبود جز او نیست در اول و در آخر ستایش از آن اوست و فرمان روائی از آن اوست و با او بازگردانی در می بگو چی می گویید: اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما دائی می گرداند کی صاحب اختیار جز خدا که با شما روشنایی بیاورد، آیا نمی شنوید بگو چی می گویید: اگر خداوند تا روز قیامت روز را بر شما دائی گرداند کی صاحب اختیار جز خدا که با شما شب را بیاورد که در آن آرام گیرید آیا نمی بینید؟ و از رحمت خیش برای شما شب و روز را ساخت تا شما در شب آرام گیرید و تا در روز از فضل او بجویید و تا باشد که شما سپاس گزار و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجایند آنهایی که ایشان را شریکان من میپنداشتید و از میان هر گروه گواهی را بیرون می آوریم و می گویم دلیل خود را بیاورید. در این حال واقعا درخواهند یافت که حق تنها از آن خداست و آنچه را افتراک کرده بودن از ایشان گم می شود. یعنی ایشان را در خلا می گذارد. بگمان قارون از قوم موسا بود پس بر ایشان سرکشی کرد. و آنقدر از گنجها ها به او داده بودیم که حتی حمله کلیدهای آن بر جماعت از مردان نیرومند گیرانی می کرد. چون قومش به او گفتند ناشکری مکن خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. و با آنچه خداوند به تو داده از سرای آخرت را بیجو. و در عین حال بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن و نیکو کاری کن چنانکه خداوند با تو نیکویی کرده است و در زمین فتنه انگیزی من و ما خداوند مفسدان را دوست ندارد گفت این دارایی به من از سبب علمی که دارم داده شده است آیا ندانست که خداوند پیش از او هایی را که هم نیروی بیشتری داشتند و هم دارایی بیشتری حقاک گردانید اما از گناهان خود گناهکاران فورا سوال نمی شود. او در میان قومش در لباس آراسته بیرون شد آنانی که زندگی این دنیا را می جستند گفتند ای کاش به ما هم مثل آنچه چه به قارون داده شده داده می شود بگمان او صاحب بحره بزرگی می باشد اما کسانی که به ایشان علم داده شده بود گفتند وای بر شما؟ ثواب ارزانی شده از جانب خدا برای کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند بهتر است و با این ثواب بر نمی خورند مگر شکیبایان پس خود او و سرای او را به زمین فرو بردیم و برای او دستهای نبود که او را مدد کند و از خشم خدا نجات دهد و او از پیروزمندان نبود و کسانی که منزلت او را دیروز آرزو می کردن گفتند شگفتا خداوند برای هرکی از بندگان خود که بخواهد روزی را می گشاید و تنگ می سازد اگر خدا بر ما احسان نمی کرد می توانست ما را هم در زمین فرو برد شگفتا که کافران رستگار نمی شوند آن سرای آخرت را برای آنانی می گردانیم که در زمین اراده سرکشی و فساد ندارند و آقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. هر هرکی نیکی کند پس برای او مزده بهتر از آن پرداخته می شود و که بدی کند پس بدکاران جزا دادن نمی شوند مگر مطابق با آنچه می کردند. همانو آنکه که قرآن را به تو فرض گردانید یقینا تو را به همان جای بازگشت تو باز می گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند چی کسی رهنمایی را آورده است و چیکس کس در گمراهی آشکار است و توقع نداشتی که کتاب به تو فرود آورده می شود این کار نبود جز رحمت از جانب پروردگار تو پس هرگز پشتیبان کافران مشه و هیچ چیزی تو را از ابلاغ آیات خدا باز ندارد بعد از آنکه به تو نازل شده است مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشرکان مروش و با خدا معبودی دیگر را در نیاهیش شریک مگردان جز او معبودی نیست هر چیز هلاک شده نیست مگر ذات او حکم از آن اوست و سوی او واسکردانی شوید